بسم الله الرحمن الرحیم الشرط في اللغة العلامت لازمه شرط در لغت به معنای علامت همیشگی علامت چی؟ بگن اشراط الساعة یعنی علامت های قیامت علامت های چی؟ فس شرط یعنی علامت یعنی چی؟ وفي الإصطلاح أما معناه إصطلاحي شرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء تعريف سبسيار خوب لقد اشتباه شتاء معناه شرطه إصطلاحي شرط ياربه میگه در اصطلاح شرط آن است که وجود چیزی بر وجودش متوقف باشد آن است که وجود مشروط بر وجود شرط چ باشه متوقف باشه یعنی تا شرطه فراهم نشه مشروط هم نمیتونه فراهم بشه وكان كان خارجاً عن حقيقته و از حقيقته اون چيزهم چه باشه؟ خارج باشه ولا يلزم بالوجود هي وجود الشيء و از موجود بودنش موجود بودن مشروط الزامي نباشه لازمي نباشه ما هنده فوسو اغا، دي قد داشته باشه؟ ببیند، وجود نباس، وجود مشروط متوقف بر وجود چه؟ شرط که همون وجود. و این وجود در حقیقت نماز داخل نیست جز رکون سجده که نیست که در داخل حقیقت نماز باشه قید بعدی چه هست؟ قید بعدیش این هست که بیگه از وجود شرط وجود مشروط لازمی نمیشه آقا کسی رفت وزور رو گرفت ممکن نماز؟ ولیکن یالزم من عدبیه ادب و ذالک اما از نبودن شرط نبودن اون چیز و اون مشروط هم لازمیه چطور؟ اگر وضو نباشه نباز نیست اما قرار نیست که به وضو حاصل شد پس نباز هم حاصل بشه ببینید چقدر قشنگ شرطو چکار کرده بود؟ توضیح داده بود و المراد و بوجود شه از وجود شه وجود و شرعی و الذي تترتب عليه آثار و شرعی ممزور از وجود اون وجود اون مشروط موجود بودن شرعیش هست که آثارش شرعی برشتی بشن مترتب بشن آثار شرعی برشتی بشن باقی که ما بگیم نماز شرطش وضوعه اون چیز وجود داشته باشه تا نماز وجود داشته باشه منظور از وجود نماز یعنی اون آثار شرعی برشتی باشه مترتب باشه آقا از براعت ذمه بشه با ادایش از گردنش ادا بشه فالوضوء للصلاة معند وضوء براء نماز وحضور الشاهدين لأخذ نكاح وحضور الشاهد براء أخذ النكاح فالوضوء شرط لوجود صلاة الشرعية تاس وضوء شرط براء موجود وضوء نباض شرعي وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة ومفرماتك وضوء جزءي أز حقيقة نماز ديس. ديس جداي أز وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة وَمِبِنِيكِ قَاهِ مَوْغِي وَزُوهَجْتُ وَنَمَاسِ مِنسي <تصفيق> تبقى تعريف وبعد، واضح شكا شبارس يكون الكتاب بيقى الشرط والركن الشرط يتفق الشرط والركن بالجهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ويختلفان في أن الشرط أمر خارجا ماهيته. اما رکن هوا فهوا جز اون مدماهیت شید دقیقا داشته باشید شرط و رکنو توضیح بیده بگه شرط و رکن هر دوتا از این جهت که وجود اون مشروط وجود اون شید متوقفه بر وجود شرط و رکنه در این چیز با هم دیگه چه دارن؟ متفقه بله در چیز هم شرط و هم روکر اتفاق دارن با هم دیگه یعنی آقا اون شیع برای وجود شرطی ای شرطیش نیازه به شرط داره و نیازه به چی داره؟ رک داره اگر شرط نباشه اون شیع نمیتونه موجود باشه اگر روکر هم نباشه نمیتونه اون شیع چی باشه؟ موجود باشه بارند نواز اگر وضوع که شرطه نباشه نوازی در کار دیست اگر سجده نباشه نباز درسته؟ نه دیگه. پس بگه که شرط و روکر از این جهت که هر دوتا وجود شه متوقف بر وجود هر دوتای در این چیز با هم دیگه شرط و رو متفقت. اما فرق دارن در این چیز که شرط خارج از ماهیت اون چیزه خارج از حقیقت اون چیزه ها وجود نباز نماز جدا اما روکن جزئی از ماهیت اون چیزه جزئی از حقیقت اون چیزه بانند رکوع که رکوعی فیصله بانند رکوع فیصله پس آقا رکوع رو بیگند روکن وزور رو میگن شرط. برای این که نماز درست باشه هر دوتا نگاز هستن. اگر روکنه نباشه نمازی درکار نیست اگر شرط نباشه نمازی درکار فرقشون با چیه روکن و شرط؟ فرقشون اینه که روکنه جز ارکان، جز حقیقت و ماهیته اما شرط خارج از ماهیت و حقیقت اون چیز هست؟ شیخ در شبسه مرکن کلاسی همه با با خوب فهو باند رکو در نوست رکو چیه؟ رکن هست فهو رکن الفیه إذ هو جزء من حقيقتها ولا يتحقق وجودها شرعي بدونه يقول بس الركوض نماز ركن هست زيرا جزء هست حقيقت نماز هس شرعي نماز بدون الركوب حقق نبي شيء. والوضوع شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ولكنه عبر خارج عن حقيقتها ووضوع شرط هست براي صحيح بودن نماز زیرا خارج. نباز بدونه وزو وجود نداره اما خارج از حفیقه پس فرقه روکن و شرطه بینه که روکن جزبه ماهیته اما شرط خارج است ماهیته سی و دو الشرط و سبب الشرط و سبب یا تفق شرط و سبب به جهتی به كل منهما مرتبط بشيء يجيك اجتماع شافي داري يتفق الشرط والسبب من جهتي أن كل منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه وليس أحدهما بجزء من حقيقته ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا فالسبب و یفضی الى مسببه الى مسببه بجعلی بنشار اما شرط فلا و بنوجوده وجود المشروطی فيه دقت داشته باشید در شماره سید دو کتاب شباحت ها و, و فرق های یا اشتراکات است بگویید و فرق های شرط و چی رو توضیح ده اونجا شرط و روگ نروتو ازیداد اینجا شرط و سبب را در شعار سیدو بگه که با هستن شرط و سبب از این جهت که هر یکی از شرط و سبب برتبط به یک چیزی دیگر هستند از این جهت که اون چیز بدون شرط و بدون سبب نمیتونه بوجود باشه نمیتونه محقق میشه پس شرط و سبب مرتبط به چیزی دیگر هستند به گونه ای که اون چیز بدون این دوتا موجود نمیتونه باشه اما و هر یکی از این دوتا جزی از حقیقت اون شه دیست نه شرط و نه خارج از حقیقت شه هستند هم شرط و همچی سبب پس در این چیز با هم دیگه بشترک هستند، متفق هستند در این چیز با هم اتفاق دارند که هر دوتا مرتبط به چیزی دیگه هستن. هستند ای که چیز بدون این دوتا موجود نمیتونه باشه و جز و حقیقت هم نیستند و یک و فرق دارند با هم دیگه در این چیز که وجود سبب، مستلزم وجود مسبب هست مگر با مانه آقا سبب که اومد، باید مسبب هم بیاد آقا زوال که داد باید نماز نماز هم چی میشه باید خوده بشه ولی قرار نیست یکی وضوع گرفت باید نواز هم بخونه آقا شما رفتی ساعت نوع وضوع گرفتی آقای باید نواز هم بخوری نه آقا خیلی از افراد پای بنده به چه هستن به وضوع هستن ولی قرار نیست با هر وضوعی پسی بگیرن نواز بگیرن متوجه رو؟ در سبب سبب که فراهم شد مسبب لازمی بیشه ولی در شرط نه پس میگه در نتیجه سبب به مسبب میشه از طرف شاره از طرف کی؟ اما شرط نه لازمی نمیشه از وجود شرط وجود مشروط متوجه شدید؟ شماره 33 هم میخونیم و بحثو تموم میکنیم اقصام و شرط شماره 33 و, و یا قسم و شرط به اعتبار مصدر اشتراتی الى شرط شرعی و شرط جعلی شرط به اعتبار که از کجا این شرطه گذاشته شده است به اعتبار مصدرش دو هست یک شرط شرعی دو شرط جعلی پس به اعتبار مصدر که اون شرطه رو چی کسی به عنوان شرط گذاشته بر دو نوع میشه دیگه یک شرط شرعی دو شرطه تعریف شد میکنه میگه فش شرط شرعی هو مکنه مصدر و اشتراطی اشاره شرط شرعی است که مصدر شرط گذاری کی باشه شاره ماشه و مثال مثالش بلوغ و سخیر سدن و رشدی بلوغ الصغیر صد در رشدی لتسلیب البال الىه مانند بالغ شدن کوچک به در رشد برای تحویل دادن مالش آقا شرط برای اینکه بالو ما تحویلش بدیم شرط اینه که باید به سن برسه به سن رشد برسه به سنتی برسه رشد ولی این شرط مصدرش کیه انسانایی رو گذاشتن یا شاره شاره گفته به بچه قال ندهید که تباهش میکنه بگذارید به سن چه رسید پس شرط تهویر دادن مال سن رشته سن چیه ولی این شرط از جانب کیه شاری و وبذرو صائل الشروط التي اشترطها الشارع في العقود والعبادات والجنايات مثل هرین شرط هست بقیه شروطی که صایر شروطی که شارع اونارو شرط قرار داده در معاملات و اقود و عبادات و جنایت شرط هایی که شریعت اونا رو آمرده که با تواجب بگید شرطی کار و عجب بدید فا این آنستو من هم رشده فدسو غیله مماله بگه که اموالو بشون بدید اگر اوزونا چه مشاهده کردید از اوناس رشد عقل داشتند و شرط الجعلی خون دومو به شرط چی بود؟ شرط جالی کدام هست؟ هو مکنه مست دارو اشتراتی اراده المکلف شرط جالی است که مصدر شرط گذاری اراده مکلف باشه که شروط علیتی اشترات ناست با ادوه ملابق شرط هایی که مردم بر هم دیگر در معاملات و در تصرفات شو بیگذارند ها شما دو نفر بیایید با هم دیگه معامله بیزارید به این شرط شرط جالیه چون بکلف بکلفید بین خودشون گذاشتن جایزی شرطا جایز داریم نا جایز داریم اگه حلالی حرام نباشه حرامی حلال نباشه آقا این, این نوع شرط مشکلی نداره که شما بیایید بگید ما شما معامله ولی تا اصر از الان تا اصر من اینجا چکارش میکنه بررسیش میکنم پسندیدم معامله قطیه نه بر بیگرد. خب این شرط شرطی جالی هست از طرف که هست؟ بکلفین هست او الاتی یشتاری تو هل بکلفی تصرفه الازی یتب و بیرادتی البنفردتی که شرطی که بابین بکلفی نیست خود بکلف برای خودش اون رو بيگزاره. خود بکلف اون یه شرطی برای خودش بیگذاره. یه چیزی رو وقف بیکنه و برای خودش نی بگذاره شرط بذاره یا اون شرط هایی که بکلف در تصرف شخصی خودش او رو بیاره با اراده خودش با اراده شخص تنهاییش یعنی بدود بکلفی دیگر بانده وقت بانده چی؟ وقت پس تا کار کافی است انشالله واقعی مده من هست یا بعدی